بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مدر انتداد بحث قبلمون به اینجا رسیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نونهال بودند یا نوجوان بودند رفتند به شام و در اونجا با ملاقات کردند و بحیرا یه چیزی جلب توجهش کرد و اونم سایه ابری که همچنان هر جایی که رسول الله صلی الله علیه و آله می هر جایی که رسول الله رفتن بالای سرشون بود میفهمه در آنجا که این شخص شخص عادی و طبیعی نیست این رسول الله هست. میره زیر سایه درخت سایه درخت از طرفی به طرف رسول الله صلی الله علیه و آله میاد خب این رسول ما صلی الله علیه و سلم کارش کتاب کارش ببخشید سالاریه تا اینکه با خدیجه بنت خویلد آشنا میشه خدیجه شخص تاجری بوده پدرش هم تاجر بوده و خود خدیجه وقتی که آشنا میشه با محمد صلی الله علیه و وسلم با از اخلاقش میشنوه با این موضوع که رسول الله بودند پولی هم نداشتن خانه‌ای هم نداشتن خدیجه او را ترجیش میده و درخواست میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که با ایشان ازدواج بکنه و رسول الله صلى الله عليه و با اینها با ایشان ازدواج میکنند. حالا درس های هر در همین بحث خدیجه که درخواست میکنه از رسول الله صلی الله عليه و سلم که یک زن اگر به یک دختری دید که مثلا یک شخص صالحه میتونه مثلا بلفای از درش بخوهد هم در بعد از روایت هم که از پدرش میخواد که برند از رسول الله صلی الله عليه و سلم بخوای که بیاد به تکرش یا بیاد ازدواجش در بیاره. الا روایتای ضعیفی هست در این جانب که ما گفتیم ما سعی بکنیم که روایتای صحیح را بیاریم تا که خود به خود این روایتای ضعیف از ذهنمون پاک بشه لیکن حالا از باب اشاره تا اینکه بدونید که این هایی که هست اساسی نداره از جمله اون هایی که اساسی نداره در بحث ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلام که در کتاب‌های سیرت مشهوره که رسول الله الله و وقتی که با خدیجه ازدواج کردن پنج سالش بوده و خدیجه چل سالش بوده دلیلی نیست این روایت واقعی و علماء حکم دروغ بودن او رو دادن روایت واقعی و در روایت دیگر از ابن که از اون صحیفتر روایت هاش میگه خدیجه بیس هشت سالش بوده حالا بعضی علماء روایت های هشت سال رو از جهت اسنادش قوت اسنادش ترجیح دادن و از جهت اینکه خود خدیجه دارای شش فرزن تا فرزند، میشه 6 تا فرزند پسر و 4 تا دختر. 4 تا دختر که الان مشهورن و زینب و, و روقیه و فاطمه. و 2 تا پسرش القاسم و عبد که معروفه کنیه رسول الله به ابو به فرزند بزرگترش داده و قبل از وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 تا پسرش کوتاه شدن ولی که دختراش اسلام آوردن و به رسیدن و هجرت کردن به رسول الله صلی الله علیه و و میگن که اونهایی که ترجیح دادن روایت ابن صافی که خدیجه 28 سالش بوده رضی الله عنها میگن که اگر چل سال قرار بشه چل سالش بشه باشه و 6 تا فرزند بیاره زن معمولاً 45 تا پنجاه سال یائسه میشه دیگه صاحب فرزند نمیشه چطوره, چطوره که چل که سالگی باش ازدواج میکنه بعد 6 تا فرزند میاره با اون سن زیاد حالا ما کاری به این تعلیلات و به این اطلاف هایی که علما گذاشتن نداریم لیکن اون چی که برای ما مهمه این که رسول الله صلی الله علیه و سلم با خدیجه ازدواج میکنند رسول الله صلی الله علیه و سلم آیشه از این شهان چنین نقم میکنه که وقتی که ما گسفندی را زبش میکردیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن که به دوستهای خدیجه ببرید آیشه میگه: من به غیرتم بر میکرد بعد رسول الله صلی الله علیه و سلام این امر رو گفتند رسول الله گفتند فرمودند اینی رزق و حبها خداوند این رزق رو به من داد این چیزو در دل من پاشتم اونم محبت خدیجه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و وسلم خدیجه رو دوست داشتن خیلی دوست داشتند یه چیزی که جلب توجه ما هست در قضیه ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلام اینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دنبال دختر خوشگل و دختر فلان و فلان نبودند اگر قصد داشتن که ازدواج بکنن میرفتن دختر کوچکتر انتخاب میکردن و زود ازدواج میکردن روایت مشهور در کتب سیرت اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ازدواج کردن 25 سالش بود حالا ما گفتیم که هرچند که این روایت ها از لحاظ اسنادی صحیح هن لیکن کن اولا که مشهور است علما نقد کردن اگر قرار باشه که 25 سالش باشه با این با این سن خصوصا در اون زمان که بچه‌ها مثلا به فرض نه بچه‌ها که نگیم جوانان مثلا 14 سال 15 سال ازدواج میکردن 13 ساله حد اکثرش ان شاء 15 سال مثلا یک شخصی تو خونه بمونه و ازدواج نکنه 13 ساله 14 ساله دیگه باید ازدواج بکنه و زن بگیره و دختراشون همون که رسول الله صلی الله علیه و آله ازدواج وقتی که عمرش 9 سال بوده دختراشون هم نه ساله، ده ساله، یارزه ساله،, ساله دیگه به ازدواج در می آوردن این چیزی که مشهور بوده در اون زمان خب بریم این از این درسایی از قصه اززواج از رسول الله صلی الله علیه وسلم با خدیجه می به قصه تأثیف کعبه و ساختن کعبه رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که 35 سالش بود قرش شروع کردن به بازسازی کعبه ما میدونیم که ان اول بیت مضا للناس لذی ببکه اولین خانه‌ای که ساخته شده کعبه خداوند ده کعبه مکه مشرفه هست 40 سال بعد از اون بیت المقدس ساخته شد ما قصهش قصه ساختن کعبه را در قصه های ابراهیم قبلا گفتیم وقتی که ابراهیم با علیه السلام با هاجر ازدواج میکنه و بعد میاد به مکه بعد قصه آب زمزم شد و بعد قصه بنا کردن دیگه لازم به تکرار نیست لیکن آنچه که مهم است در قضيه و بنا و باف کعبه این است که قریش اومدند کعبه را بسازن با خودشون اختلاف کردند این با این و دیگری با یکی دیگر تا جایی که مثلا دستاشون را تو خون گذاشتن این خودشون لعنت کرد این را گفت که ما نمیدونم فلان میکنیم و فلان میکنیم و شمشیرها رو بلند کردن که همدیگر را بکشن به جنگ بخیزن با همدیگر به خاطر چی به خاطر سنگ حجر و اسود که کی سر جاش میذاره، الان بعد از ساختن کعبه خب آخر امرشون چینین میشه که به خودشون میگن هر کسی که از این کوچه از این در وارد بیت الحرام میشه خانه خدا میشه مسجد الحرام هر کسی از این در وارد میشه همون کس حجر و اسود رو سر جاش میذاره رسول الله صلی الله علیه و وارد میشه حالا جالب اینجاست. پنج سال هنوز مونده که به عثاق برسند رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که وارد در میشن چی میگن مشرکین میگن جا الامین، امین و ماد. اقرار به امانت داری، اقرار به درستی و اقرار به اخلاق والا و رسی رسول الله صلی الله علیه. این شخص امینیه، مثل دیگران نیست. همه راضی میشن که رسول الله بیاد حجر اسود را سرجاش بذاره. رسول الله صلی اللہ علیه و وقتی که میان سنگ را بزرگ میبینن میگن که از هر قومی یک نفر بلند بشه بیاد به من کمک بکنه یک طرف پارچه را بگیره تا اینکه من راحت رو را سر قرار بدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم حجر اسود را سر میذارن و کعبه تأسیس میشه و خاتمه پیدا میکنه. ساختن کعبه و اون چیزی که هست در ساختن کعبه اینه که قریش پول نداشتند که کعبه را به شکل ابراهیمیش در بیارن اگر شما توجه کرده باشید در قسمت کعبه یک قسمت هلالی شکل هست که معروف به حجر اسماعیل این قسمت جز کعبه بوده و دری بوده ابراهیم وقتی که علیه السلام وقتی که کردن دری گذاشتند این و طرفی دیگر وقتی که کسی میخواست می بیاد طواف بکنه و میخواد وارد کعبه بشه از این در وارد بشه از در دیگر بیرون بیاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین میگه به عایشه رضی الله عنها لولا ان قومك حديث و عهد بالكفر اگر قومت عهدشون به کفر نزدیک نبود من کعبه رو دوباره به حالت ابراهیمیش در می میخواستن رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل کعبه قبلی دوباره بازسازیش بکنن کعبه چون مشرکین وقتی که اومدن باط سازی بکنن وقتی که پولشون نرتی اون قسمت رو رها کردن و دیوار از این طرف کشیدن و عبدالله بن زبیران وقتی که به خلافت میرسه بهش بیعت میدن میان کعب میاد و که میاد که را همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن دوباره همین کارو میکنن لیکن متاسفانه حجاج بن یوسف که امروز عذ بحث بود وقتی که میاد عبدالله بن زبیر گاردنش رو میزنه میاد کعبه رو دوباره خرار خراب میکنه و دوباره به همون حالت خوریشیش و حالت طوری که مشرکین ساختنش همونطور درش میارن این درسایی هم هست در همین قضیه کعبه یعنی انسان ها نگاه بکنید یه چیزی که مثلا بالفرد از سنت پیانبران بوده یه چیزی که اصلا اقرار همه بوده که این قسمت حجر اسماعیل از خانه خداست لیکن این شخص فکر میکنه که این کار فقط عبدالله بن اوزویر کرده بدعتی از بدعت ها. ما اگر یک سنتی بخوام احیا بکنیم الان امروزه به همون چی میگن این شخص سنروه این شخص نمیدنم فلانه و فلانه صد تا تهمت بهش میدنن تطبیق سنت ها اجرا کردن سنت ها امروزه خیلی سخته هزار تا تهمت به انسان ها میدنن خب حجاج دوباره کعبه را به شکل همونطوری که مشرکین ساختنش در میاره متاسفانه. خب این قصه بنا و باسازی کعبه میرسیم به بحث رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلام که صلب موضوعمون هدف از این درسمون از اینجا آغاز میشه اون چیزی که ما مقصدمون هست از این صحبت ها همین جاست بحث بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلام و بر رسالت رسد نه الله صلی الله علیه و سلام الله صلی الله علیه و سلام که در نماز آیات تلاوت شد همه پیانبران پیشین موسی و عیسی و ابراهیم و غیر همه بشارت دادن به پیانبری که بعد از خودشون میاد و اسمش احمده یا در کتابهای اسمش محمده اولین رسولی که برای امت اسلام فراشت برای برای آخرین پیانبری که برای اتمام حجت فرستاده شد دینها را کامل بکنه در دیگه ادیان آسمانی قبی را ببنده رسول الله صلی الله علیه و سلم الان نشانه هایی داره در بحث رسالتش نشانه ها زیاده که ما خواهیم اومده بحث اون نشانه هایی که دلیل میده بر نبوت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم الان مثلا از جمله نشانه ها رد میشدن سنگ به رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام سلام میکردن سنگا سنگ سلام میفرستادن و سلام میکردن سلام علیکم يا رسول الله غیر از اون خواب هایی که میدادن می الاو مسائل زیاده که ما ذکره کرد لیکن حالا اون چیزی که مهمه هستن این که ما در شروع بحث بحث ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم این و ظهوم ربیع الاول ما تقریبا بیش از یک ماه که این بحثا رو شروع کردیم اون چیزی که مهمه اقرار اقرار کردن و شادی کردن تنها نیست بحث رسالات رسول الله صلی الله علیه وسلم بحث اقرار به عبودیت خداونده بحث اینه که ما از خداوند دفاع بکنیم بحث اینه که ما نذاریم کسی پشت بدیم بده چایز همه من نماز متوجه صوت موسیقی و آهنگ شدیم که سر نماز از همین کنار مسته صوت آهنگ اومد ما نگاه بکنیم یک شخصی که میاد یک سنتی را ترویج بده یک کاری را به از امتای پیشین کردن تدران ما انجام دادن ما انجام ندیم. به یک شخصی سر مولودخونی مثلا شرکت نکنه. یا به سر نمازی یک شخصی رو ببینم با موج بلند میشه. بلفرد چی میکنن؟ دنیا رو بله قایم یا بلفرد یک شخصی دعا بر از نماز چه کار میکنن؟ چقدر حرف خوشو سرش لیکن ما حالا این بحث بچه در اینجاست ما چرا غیرتمون نسبت به معصیت خدا نشون نمیدیم ما می‌بینیم دختران میرن و میان بچه های خودمون میرن دنبالشون و میان خیلی از چیزها بحث موسیقی که حالا هیچ بحث اون کانال ها و فلان و فلان و اگر ما بخوام ذکر بکنیم خیلی زیاده از این شکل ها و ریخت های بچه های که میبینیم یک شخصی وقتی که این منکرات را می‌بینه یکم به خودش جرأت نمیده که بگه بچه این خرابه، این کار درست نیست این حرامه از بچه های خودمونن همین وقت نماز نمیان مسجد نماز بخونن این واجبی که برگردن همه مسلمان هاست نمیان انجامش بدن بچه های خودمونن تو همین کنار دارن بازی میکنن ببین ما احتصاص مسئولیت نمی کنیم و چیزی نمیگیم اصلا من نشون نمیدیم لیکن وای بر کسی که از سنت‌های پدرانمون انجام نده هرچند که در سنت دینی نیست گفتم وحی برش نیست صحابه هم انجام ندادن خیلی از مسائل دلیل هم برش نیست جز اینکه پدرانمون انجام دادن پدرانمون محترم لیکن دلیلم و سنت صحیح مصطفی هم سر جای خودش بجه خودشو داره اون چیزی که الان من میخوام بگم خداوند از رسالت محمد صلی الله علیه و سلم درس هایی میخواد به امت بده میخواد اتمام حجت بکنه بر بشریت اینکه کسی دیگه به خودش اجازه نده از کسی غیر از پروردگار قبول بکنه یا کسی بدین پشت بده حالا من خیلی مسائل هست بعد از بحث عظمت رسول الله صلی الله علیه و گفت ما نگاه بکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه ما به یقین برسی که کامل ترین پیامبرانه برای اینکه ما یقین داشته باشیم هیچ کسی از اون برتر نیست خداوند معجزات پیامبران پیشین بلکه بیشتر از آنها به رسول الله صلی الله علیه وسلم میده اگر موسی به رود نیل میزنن و رود نیل یا اون دریا نصف میشه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام القمر رو داره با اساس اشاره میکنه به ماه و ماه دو نیم نمیشه دو میشه کدوم یک بزرگتره آبی جلو روی مون نصف بشه یا ماهی که در آسمانه کدوم یک بزرگتره؟ فکر کنم کسی بگه که این دریا شکافتن سختر از ما شکافتن باشه عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم تا یهود اقرار بکنن تا یهود بدونن کسی بزرگتر از این پیامبر نیست صلی اللہ علیه و سلم 1400 ساله که ما مینالیم ادست مفکرین اسلامی کسانی که احادیث را قبول ندارن و همین لباس خودمون را پوشیدن و این احادیث را انکار میکن همین چند پیش من با خودم با یکی از اینها بحث کردم از همین قسم خودمون می گفت که این چی آیات رو میگید همینجوری و شکل قمر ماه نیست شده اصلا این قابل قبول نیست با آخور در میاد که ماه نیست بشه چرا ماه نس بشه معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار میکنند گفتم از همین خودمون اول بهش گفتم گفتم فقط میدونی چه کار بکن در اینترنت را باز بکن برو تو سایت ناسا نگاه بکن اون عکس ماهی که گرفتن خود مشرکین قبول دارن خود اون کفار قبول دارن که ماه الان دونسته هست وقتی که ماه روی هم نشسته بعد از اون معجزه رسول الله صلی الله علیه و وسلم که هیچ کس ادعای نصف و نیمش نکرده بعد از اینکه سرجاش برگشته درست سر جای هم بر نگشته فاصله داره از وسط یک شیاری کامل از بالا تا پاینش هست کار میخوام بکنیم چشممن داره کور میشه اینها افتار قایم کردن نمیخوان ماها ببینیم لیکن ما اون چیزی که خداوند در قرآن گفته قبول داریم روسر و چشم میذاریم چون خدا گفته ما قبول داریم این یکیش که همچنان هست تا آخر قیامت تا ها و زمین ها به هم نخوردن این نشانه هست اگر قرآن را قبول ندارید این ماهو چیکار میکنید که ادعا کرده که این ماهنس شده اگر موسا و است که موسی لقمی فهم فجرت می، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 باختی که از بیابی مینالیدن خدا من دستور میده که به سنگ بزنه. از سنگ چشمه جاری بشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم ده هزار نفر همراهش در تبوک هستن، رفتن به جنگ آبی ندارن. موسا میزنه به سنگ آبی رو میاد، رسول الله دستشو در کاسه قرار میده، از دستش چشمه سرادیر میشه. کدام یک بزرگتره از تنگی انسان بزنه چشمهی شکافته بشه یا اینکه از کف دست انسان در کاتهی گذاشته بشه و چشمه سرازیر بشه رودی سرازیر بشه که مسلمان ها ده هزار نفر از اون رود بخورن و بنوشن کدام یک بزرگتره عظمت رسول الله که چشم حسوزان کور بشه چشم کسانی که گفتن رسول الله صاحره و فلان و فلان کور بشه خود اقرار دارن که رسول الله امینه لیکن چرا نمیخوان بفذیرن؟ چرا انسان نمیخواد بفذیره؟ این علامت استفهامی که ما جلوب خودمون میذاریم باید بذاریم ما برای دینمون شکار کردیم این ها و این نشانه ها رو ما داریم میبینیم رسول الله عروج میکنن اگر قراره که موسی در صحرا خدامند باش صحبت بکنه رسول الله میره به آسمان هفتم به معباش تا اینکه رودرو با خدامند از پشت پرده باهاش صحبت بکنه این عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلام رودرو با خدا من صحبت بکنه چیکار کردیم برای این دینی که خداوند این رسول عظیم رو میفرسته چشم من در میشه با این آیات و نشا سبحان الذي اسرا بعبده این آیات ما همچنان داریم میخونیم آیات جهنم بزن کنار که چقدر آیات درباره جهنم اومده و درباره این که دست‌ها شهادت میده لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انت بكل شيء میان شهادت میدن که ما این جنایت جنایتو کردیم زبان شهادت میده پا شهادت میده چه شهادت میده این چنین خطا کردی این اشتباه کردی اینجا دروغ گفتی چه کار میخوای بکنی غیر از این نشانه ها رسول الله صلی الله علیه و آله غیبت نکنی اگر گفتن این حرام ها رو انجام ندین و خاطر همینه عظمت خداوند نگاه کوچکی گناه نکن نگاه بکن که سرپیچی از کدام بزرگی میکنی این بزرگی که این پیامبر بزرگی را میفرسته ما اگر جهاد میکنیم ما اگر شمشیر جهاد را بالا کردیم به خاطر چی اگر ما این لباسو پوشیدیم اگر ما این ها را میکنیم برای چی برای اینکه از خدا دفاع بکنیم برای اینکه به خدا پوش نده ما متاسفانه به خدامون پشت میدن ما متاسفانه به پوش میدن ولی باهاشون میسازیم اونهایی که ادعای شریک برای خداوند می کنند از مرده و بوت و فلان و فلان اونهایی که گفتن عیسی فرزند خداست اونهایی گفتن عزیر و الله عزیر فرزند خداست از یهود چیکار کردی در مقابل اینها اگر یک شخصی از ما که نکرده بهش بگن این شخص فرزند توست بهش بر میخوریم که من زنا کردم میگن این فرزند داشته باشه یک مؤمن غیور به خودش اجازه نمیده که فرزندی زنا داشته باشه کسی تهمت همه تزنا بزنه لیکن چطور راضی میشیم که درباره پروردگارمان بگن که فرزندی داره؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد چه فویی بود که برای خدا شریک قائل بشن؟ در مقابل این شرک ها، در مقابل این سرپیچه از دستورات این پروردگار بزرگ، ما چیکار کردیم؟ چه اطول عملی از خودمون نشون دادیم؟ اگر پیان بزرگه، چون خداوند خیلی بزرگه. چون خداوند میخواد رو برای ما اثبات بکنه. حالا این مبحث خیلی طولانی تر از اینه. ما اگر بخوام بحث اینو باز بکنیم که ما چقدر از خدا دوریم. و برای خدا کاری نکردیم برای همین دینمون امر معروف از منکری نکردیم دست فرزندانمون دست دوستانمون نگرفتی به این مسجد بیاریم به طاعت و عبادت به صدق راهی بکشیم زیاد بیش از حد لیکن فقط یکمی همونطور گفتن انصاف داشته باشیم به اون چیزی بپردازیم که جامعه را اصلاح بکنه اون چیزی بپردازیم که عبادت را اصلاح بکنه اون چیزی بپردازیم که فرزندانمون را راست بکنه دنبال مشروب نروند دنبال نمیدنم مواد اعتیاد و فلان نرن این منکراته یک شخص مشروب میخوره علنا و جهارن کسی هیچ اصل عملی از خودش نشون نمیده لیکن گفتم وای به حال شخصی که بگم مولود مثلا بالفرس رو نت نیست وای به حالش و خوابی که هست هیچی کافر هم میکنن ش... کافرش کافرش می میان میگن که ما مثلا بالفرس جوانی میاد 16 سالشه به خودم گفتن رفتن مثلا فلانجا گردش دوستان با هم نشستن مشروب میخورن آیا من جایز کجا بشینم؟ این چیلی سوال میکنه چند سالشه؟ 16 سالشه کجان پدران؟ کجان؟ کجاست غیرت به دین خدا من؟ چه توقعی داری؟ اگر دلسوزی به دینش نداری دلسوز جامعه باش فردا این پسر میخواد چه کار بکنه؟ این شخصی که داره مشروب میخوره دنبال اسیاد و دنبال سیگار و فلان و فلانه. این جامعه رو چی کار میکنه؟ به زنا و فحشا و منکرات و هر کاری که بخواد دست به کار انجام میده و هر کاری که میخواد انجام میده دزدی هم میکنه بعد, بعد بعدن آدم هم میکشه اگر دست به اتیاد اگر به اون مواد مخدرش نرسه آیا اینچین جامعه ای ما قبول داریم؟ اگر میگم دلسوز خدا نیستیم اگر غیرتی برای دین خدا نداریم دلمون به جامعهمون من درد بکنه دا دختر داریم. دخترمون وارد از مدرسه میشه فلان میشه دوست دارید دخترتون با فرزند فلانی و علام ببینید الان پسران من همینجوری با دختر فلانی صحبت میکنه دختر با پسر فلانی صحبت میکنه ارتباطات و فلان و فلان و فلان و بعده روز بروز داره جامعه بدتر میشه چرا ما بیدار نمیشیم این جامعه میتونه از حق خدا دفاع بکنه این جامعه جامعه میتونه از رسالت محمد صلی الله علیه و سلم دفاع بکنه رسول الله جونش و وقتش و همش دادن برای دین اسلام سه سال. در چند می ایسه شمشیر میخورد وسط فرق سرش فاطمه میبید که پارچه رو می در فرق سر رسول الله فرو می بردن که خونش بیسه بی خونش نمی ایستاد این چنین رسولاش خنج دیدن زج دیدن طول عمرش میگه با اگر ازدواج کرده نه همسر با همسراش نشسته یا اینکه اومده از اسلام دفاع بکنه. طول عمرت از اسلام دفاع میکرد از همون مکه از آغاز بعثتش از آزار و از اذیت در کوچه ها بگیر از نمیدونم فلان بگیر از فوش و نمیدونم نفرین و از نمیدونم از انواع سخن های زش بهش میگفتن دیگه استقامت کرد برای چی برای حق خداوند یکی ما قیور باشیم غیرت داشته باشیم نسبت به دین خداوند نسبت به این منتی که خدامن برتر ما گذاشت اونم رسالت محمد صلی الله علیه و سلم این خلاصه صحبت امروزمون ببخشید وقت تو خیلی گرفتم و انشالله که صحبتهای من را با حس نیت بگیریدنی بعضی ها شاید بهشون بر بخوره که شاید ما یک جاهایی تون بریم لیکن حقیقتش جایی انسان دلتوز جامعه هست میبینه مثلا روی چیزهای انگوش گذاشت نمیشه که الان ضرورتش نیست و انسان برای خودش عقل داره، اختیار داره. میتونه انتخاب بکنه. مادامی که گناه نیست، مادامی که گناه نیست، یکم انصاف داشته باشیم، یکم کتابیم، یکم نر باشیم با هم دیگه. روی چیزهایی که مسئله که مهم نیست، بزرگ نیست، خیلی آنگوش نذارید. این از باب میگم، از باب اینکه جامعه فاره و تیک تکی نشه. یکم دلهامون نر بیاد. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان ربك العظيم، و صلی الله محمد و محمد.